بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب من مات له سقف حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله مال ما قدمت ومال وارث ما أخرت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصراط والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد هفته دومين باب أزواب بواب صحيحة مفرد من بخاري باب من مات له سقت وسقت وسقت حرسته تلفظ شده ولكن مشهور ترينش سقت مشهور ترينش سقت بو كسر هم با فتح هست، فتح سین و هم با غم و هم با کسر. سخت جنینی هست که در شکم مادر قبل از بلادت اون جنین اون جنین در رحم مادر بمیره و سخت بشه. بیفته اون جنین. حالا بعد از تشکیلش، بعد از اینکه اون جنین شکل بگیره. حالا احکام خاص خودش داره قبل از چهار ماه و بعد از چهار ماه روح درش دمیده بشه، نشه. بن جنینی که در رحم مادر هست و در رحم مادر می میره و بعد سخت میشه بهش میگن سخت خب کسی که همسرش سخت بکنه اون جنین سخت بشه ازش آیا این شخص در مقابل این بچه ای که از دست داده بچه ای که تشکیل نشده یا اون بچه ای که سخت شده و افتاده آیا در مقابل این هم انسان عجر و پاداش داره یعنی اون مردم سوابکار میشه ما همشين زنش، حديث سدو شورده، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب إليه من ماله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله احب إليه من مال وارثه إن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم موعزنا كردا إن جاء درسينا دودا إن جاء مطلبی را بیان نکرده بلکه مطلبی را از اصحاب خواستند که اونها بگن پاسخ بده. با سوال شروع کرد. از شما کسی هست که مال میراث برا مال میراث بر مال بچه هاش اگر بمیرم کسی هست از شما که مال اون میراث بر براش عزیزتره از مال خودش. این کسی از شما دوست داره بچش می و بعد مال اون بچهش بهش برسه کسی دوست داره؟ هیچ کس دوست نداره. طوسی که صحابانه نقل الهی رسول ما من احد الا ماله احب و اليه من مال وارده مال خود آدم از این سر مال میراث براش این چیزی که به ذهن میاد الان این چیزی که انسان وقتی که سطحی نگاه میکنه به سوال این سطحی نگاه کردن به سواله این سوالی که متبادر به ذهنه اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مخاطب رسول بن‌ها یک چیزی دیگه هست مقصود یه چیزی دیگه هست از این یک معنایی در این حدیثه اصال شروع کرد که ذهنها چی بشن؟ ذهنها بیدار بشن چون انسان وقتی که کنجکاو میشه وقتی اینجا رسول است با اصلا شروع کرده اون مطلب رو بیشتر میگیره خلاصه این ادبی از آداب و معلم اینجا با معلم یاد میگیره که چگونه تعامل بکنه با شاگردش ما در این حدیث انواع تعامل رو یاد میگیریم اینجا نوعی از تعامل استاد با شاگرد جایی نیازه که استاد با سوال شروع بکنه و برای اینکه اون مطلب جا بیفته با یک معمای، با یک حل یک مشکلی از حدیثی از آیهی شروع بکنه تا اینکه اون طرف مقابل با تمرکز روی معنا مطلب رو درست بگیره شیخ احسان الله غهیر رحمه الله چندین کتاب داره در رد بر فرقای متعددی مثل بهاییت مثل قادیانیت فرقه احمدیر و همچنی شیعه اسماعیلیه با فرقه های مختلف شد یک گنجینی هست کتاب های شیخ احسان لاحیظهیر در کتاب اسماعیلیه شیخ احسان لاحیظهیر مطلبی را یاد میکنه مطلب خیلی مهمی چون تأسیس این فرقه گمراه را یاد میکنه اسماعیلیه ها به وجود اومدن با انواع شاقه های مختلفشون از بوهره گرفته و قادریه گرفته و انواع فرقه های که منتسبن به این فرقه که معروفن به علی اللهی ها که قائلن که علی خداست یکی از اصول این فرقه ها که یاد میکنه قسم اللهیه که رب داره به این مطلبی که بین شاگرد و استادش یکی از طرفنده های دعوتشون همینه یکی از اصل از اصولشون اینه که برای جذب از ده حیله استفاده بی کردن از ده حیله حیله های مختلفی هست یکی از اون حیله ها یکی از بندهای اون حیله یک مسئله مغموزی یک مسئله که شبه معما داره یا شبه مشکل داره که هر کسی بلد نیست را عنوان یک سوال مطرح می برای ایک شخص رو وابسته خودشون بکنن مثلا می گفتن به طرف اِنَّمَ الْخَمْرُ والميسر والانصاب والازلام رجس میدونی خمر چیه این خمر چرا خداوند گفت انم الخمر وشرب گفت والميسر مين میدونی چرا گفت خمر و میسر میدونی مقصد از اینا چیه باب شخت میگفت بله بده یه خمر اون چیزی که آدم مینوشه و مس میکنه نه تو نمیدونی خیلی احادیث تو این قضیه هست خیلی این قلب لدونی میخواد هر کسی نیست خب این علم لدنی رو کجا به دست بیاریم؟ اقتاب هست، اوتاد هست، همینطوری که بهش نمیرسیم. الله برای خودش یک های خاصی قرار داده بر روی زمین، همونطور که ستارگان در آسمانن، اینها بر روی زمینن. اینها راه‌های هدایت هم بر روی زمین هم تو که ستاره‌ها راه‌ها را برای ما مشخص می‌کنن، می‌تونیم بفهمیم که کدوم بر قطب، کدوم بر شرق و غرب. اینها هم اتاد و اقتاب و اینها هم رامز و رموز هستن برای رسیدن به مطلوب سخنان الهی الله که نمیخواد بگه مشروب حرامه اصلا بحث خدایی نیست تو میدونی چقدر از صحابه مشروب میخوردن حتی باوجه که حرام شده بود حتی بعد از حیات رسول الله و خوردن مشکلی که نیست نیت خوردنش شاید مشکل داشته باشه کدام به چه قصی بخوره و چه قصی نخوره و الی آخر باطره همین در خیلی از کتاب‌ها شما می‌بینید که خمر پیششون جایزه عمل قوم ولود براشون جایزه میگن که بس اینکه به نیتت داره تو چه نیت این رو انجام بدی و خیلی از متاثرین از شیوخ طریقت که متاثر بودن به این قضیه عمل انجام میدادن و خودشون اعتراف میکنن اون چیزی که من در آفریقا با گوش خودم شنیدم از شیوخ طریقتی که توبه کرده بودن و حسن این اعمال مثلا عمل قوم رو با بچه سالها انجام میدادن و این رسم رسوم این فرقه ها بوده و همچنان هست در خیلی از کشورهای اسلامی و خیلی از فرقه های گمراه برای خودشون از اون شیوخ و به اسم ملا این کارها رو برای خودشون تجویز میکنن خب این مجوزش از کجا آمد از تفسیر باطنی یک قضیه مشکلی رو به عنوان اشکال بطرح میکنن و از اون به عنوان خود برای انحراف افراد استفاده میکنن خب مثلا به عنوان مثال شیخ یاد میکنه اله کل طرفدارشون بعد میگه که خب وقتی که شخص کنشکاف میشود که هلا بدونه واقعا چیه و چه چی حدیثی هست اقتاب و اوتاد هم کی نیستن هم باید برسه پله پله میگه خب برای رسیدن به اون پله اول ازش عهد میگرفتن میساق میگرفتن قسم های مغلز میگرفتن انواع عهد و میساق ازش میگرفتن تعهد میگرفتن تا این که به پاسخ برسه باید بیه پابوس فلانی بشه و نمیدونم یک اعتقادهایی بهش تلقین بکنن تا بر به جواب الان این پله ها تو رفتی سر سفره این خمر و مشروب ما هم نشستی الان وقتش رسیده که این پاسخه را بهت بدیم. میدونید پاسخ چیه ؟ پاسخ ان خمر ای اب و بکر وال میث رامررب عثمان و عفان والازلام ااصلسلام فهمیدید این حل مشکل. شما فکر میکنین فرقا وجود نداره نه همچنان هست در سوریه از فرقه مختلف در هند، بحره، دروز، نسیریه و دیگر فرقه هایی که منتسبن به این فرقه همچنان هستن و این اعتقادات در کتابشون هست. یعنی این نیست که ما بدون مدرک صحبت بکنیم، بدون دلیل صحبت بکنیم، نه، تو کتابشون مکتوبه. تو کتابشون مکتوبه و این هست و همچنان این نبرد می با این اعتقادشون می جنگن، می اینو از این باب گفتم که آگاه باشید باشید، این روش های سید هست بچه کچک راحت تر سید میشه تاولا. کسی که علم شریع خونده با. خصوصا این مسئله مهمه شما چرا فریب نمیخورید؟ چرا گفتید لعنه هم الله؟ پران در دلتون قبح این ترفند اومد چرا؟ چون حب ایمان حب کلام الله و پیغمبرش در دل شما نشسته و اصحاب یارانش شما نتونستید این قضیه را حضب کنید ولی وقتی که مجتمع جاهل باشه ق به مردم نرسیده باشه انسان خام باشه این مسئله براش میشه حذ شدنی قابل قبول بلکه ولا براش میشه روی این قضیه همطور که هست روی این قضیه تربیت شدن عروس که دست بچهش رو میدن بعد از مدتی از بچه رو میگیرن. عروس عروس عروس چی شد؟ و بسش میکنن بعد میگن نیست. کجاست؟ کی ورده میگن عمر بود؟ بغز آمد رضی الله عنه. از همان بچگی در دل اون بچه میدارن. این ترفنده. این روندی که داشتن اهل بدعت با صحابه رسول الله صلی الله علیه و salam علی فقط حاشیه بود حالا بریم به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اینها اگر از این قضیه در باطل استفاده می کنن ما باید در حق استفاده بکنیم و مطلب را ما اونطوری که حقیقتش هست به مردم برسونیم حق را به مردم برسونیم با این روند خب اینجا رسول الله صلی الله علیه و salam میگه کدوم یک از شما مال وارثش مال وارثش حقیقتش این که مال وارث، مال وارث، اون مالی که مال بچه انسانه مال خودشه، مال خودشه. در ادامه یه حدیث که آنها نگاه بکنیم رسول رسولالله صلی الله علیه بدانید. منکم احد مال وارثه حبوله من ماله. هیچ کدوم از شما نیست. مگر اینکه مال میراث براتون، براتون عزیزتره، محبوبتره از مال خودتون. اونا گفتن که مال خودمون محبوب تر عزیز سر از مال میراث برا الان رسول اساسا بهش میگه نه میگه هیچی یک از شما نیستید مگر اینکه مال میراث براتون براتون عزیز سر از عز مال خودت چطور قال مالك ما قدمت مال خودت میدونی چه مالیه مال تو مالی که در حیات خودت دادی در راه الله این مال خودته مالك ما قدمت و مال ورثك ما اخرت مال میراث براها هم مالی که گذاشتی برای میراث برای بعد از حیاتت چرا انسان مال اندوخته میکنه زمین میخره برای بچه هاش نه. به فکر بعد از مرگش من مردم اینا کجا برن کجا بشینن پدری هست که اصاس مسئولیت نکنه در مقابل هر نه چون بچه هاش عزیزن مالی هم که برای میذاره عزیز یا عزیز نیست عزیزه حالا کدوم یک مال عزیزه سره مال خودش یا مال میراث برای سرشت انسان، طبیعت انسان مال میراث برا براش عزیزتره این مقصوده، این معناس و الله صلی اللہ علیہ به اعتبار معال پاسخ دادن به اعتبار اون چیزی که با مردن تو رخ میده تو مردی مالت دونوه یک مالی که در حیات خودت اون کسبی که داشتی در راه الله دادی صدقه دادی مسجدی ساختی و الاغیر این مال خودت بوده پاداشت برایت هست بعد از مماعتت، بعد از مرگت و یک مال دیگه مال میرس براه هست که یا در حرام بگذاره یا در حلال نمیدانی اون مال اونهاست اون مال که رها میکنی مال هاست خب این حدیث تشویق بر چیه؟ تشویق بر صدقه تشویق بر کار خیر علا ساختن مسجد و الی آخر علا میخواد مدرسه باشه، بیمارستان باشه هر چیزی باشه که کمک به ایتام باشه این حدیث کی اومد در ادامه انا و کافل الیتیم که حتی بحث کمک و یاری رسندن به ایتام. پس انسان باید حریص باشه بر بزل خیر نه بر اندوخته خیر اندوخته کردن اون خیراتی که بهش میاد اندوخته بکنه فقط پس انداز بکنه نگه بدار برای خودش خودش استفاده نمیکنه بعد از اینکه مرد آلا میرس هم میان دعوا بر سر مالش ملکه مرزشش میلیارده حاضرن با نصف قیمت بفروشن تا اون دعوا حل بشه مفت میان مردم میخرن در زمان خودش شخص زنده هست حاضر نیست که مال خودش رو با قیمتی هنگفت بفروشه ولی وقتی که مرد مفت و مجان میخوان فقط ردش میکنه فقط میخوان یعنی از دستش خلاص بشن که فقط دعوا بنشون حل بشه و یک مال دستشون بیاد این مال وارثه این مال میراث بره کلی جنگ و جدال و قهر بین فرزندا و بین خواهر برادرا میشه به خاطر همین مال که اندوخته کرده همین مالی که تو عزیزت پیشه همین مالی که تو محبتت شو داری همین مالی که تو دنبال اندوخته کردنش بودی این طبیعتتونه ادتنا نمیشه عوض کرد ولی حدیث این راهنمایی داره رسول الله صلی علیه و از باب توجیه و راهنمایی داره بهمون میگه که همونطور که به فکر فرزندان هستیم بعد از حیاتمون به فکر اندوخته آخرتمون باشیم که برای اونجا پس انداز بکنیم نه برای زندگیمون برای این دنیامون برای آخرتمون اندوخته بکنیم نه برای دنیا و این حدیث هیچ روزی نداره با اون حدیث رسول صلی الله علیه وسلم که به اون صحابه بگه انتذر ورثتک اغنیه خیر من انتذرهم عاله که فرزندانت را غنی و بینیاز رها بکنیم بهتر از این ک نه که چیزی اندوخته نظری برای فرزندانت نه بحث اینه که تو اندوخته آخرتی هم داشته باشی همون قد که به فکر اینها هستی اینا عزیزان به عزت خودت هم فکر که اونجا عزیز باشی پیش الله متعال عزیز باشی محبوب درگاه الهی باشی با کار خیر ای یک مسئله هم که باشه در ذهن اونم این که چرا بدی داشت جنین با این حدیث با مال وارث و مال میراث بر چرا بدی داشت قضیه جنیم بچه شاهدش کجا بود حدیثی که خوندیم الان مثلا عنوان میگه که بابو من مات له سقت بعد حدیثی که میاره ماله درباره ماله مالی ازش رفتنی فرزند ماله بحث ما گفتیم دو نم داریم دو اندوخته کردن داریم یک اندوخته انسان بکنه برای دنیاش یک اندوخته بکنه برای آخرتش یکی از چیزهایی که اندوخته میشه برای آخرت انسان یکی از چیزهایی که اندوخته میشه مصیبت هایی هست که برای انسان در دنیا پیش میاد تو وظیفته که زنی با زنی ازدواج بکنی که ولیود باشه و اون نیت در اون همبسترید بچه باشه هرچن اون بچه سخت بشه هرچن اون بچه بمیره تو در مقابل اونها اندوخته داری برات اندوخته حساب میشن برای کجا؟ آخرتت اون بچه ای که سخت میشه اندختته برای آخرتت اینها اندوخته ها هستن دست کم نگیریم من الحديث هذا قال المؤلف رحمه الله بإسناده السابق قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا طب خب حديث 115 بازم سؤال يعني ناكل ربع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب رقوب شيء رقوب در راغت زن مردیم که الله بهشون بچه نمیده و نداده. یا بچه بهشون میده بچه هاشون می بیشتر به این اطلاق میشه. الله بچه بهشون میده ولی بچهشان میمیرن خب سال اینجا شروع میشه از الله شده ما تعون فکر اون رقوب رقوب چیه؟ خ خب جواب؟ قال رق الذي لا یولله له مردی که یا بچه براش نمیمونه یا بچه نمیاره قال قاللا نه رقوب این نیست. ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا حقيقه الرقوب چون اصل کلمه رقوب مترقب بودن مرگ فرزنده یعنی کسی شخصی منتظر مرگ مثلا کسی که میدونه بچه‌اش میمیره و منتظر مرگشه چون میدونه میمیره این رقوبه ترقوبه نمیگم چشم انتظاری ولی خب همون حالات رو داره یه چیزی خوشایندی نیست که چشم انتظار باشه نه میدونه منتظره که این بچهش میمیره بچه برایش نمیمونه این رقوبه مترقبه یعنی آماده رو آماده کرده برای این مسئله این مصیبت بچه برایش نمیمونه زنش هم زایمان بکنه بچهش میمیره نه یک بار نه دوبار چندین بار این قضیه رخ داده یا سخت جنین میشه یا بچهش به دنیا بیاد مرده است خب این چیزی که متعارفوده نظر رقابه اینه شخص منتظر این مصیبت خب علا رسول الله صلی الله علیه چه پاسخت نمیده نه رقوب اینیس رقوب قال صلی الله علیه و سلم قال لا ولكن الرقوبه الذي لم يقدم من ولده شيئا حقیقت رقوب اینه که شخص در حیات خودش طعم مرگ رو ندچیده باشه این رقوبه نه اینکه بچه نزاید چون صحابه اینجوری پاسخ دادن صحابه پاسخ دادن رقوب کسی که بچه نمیاره کسی که بچه زانیست عقیمه این رقوبه رسول اللہ سرسان فرمودن نه رقوب آن کسی هست که بچه میاره ولی بچهش در حیاتش فوت میشه حالا چه ربطی داره با حدیث قبلی بحث کسی که تا فرزند در حیات خودش در از دست بده اون شخص در مقابلشی داره بهشت الله جل شانه. سخت جنین هم همینطور و الى آخر في شرح الحديث قلت ما هذا؟ اي هذا أحقه باسم الرقوب من ذلك الله بحرده تطلق من ما هذا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن حقيقة رقوب ناس رقوب إنا إن شمان تظهر هاس كما تشيء الله بيش بده ولكن إين تفاقعنا داره وما دقيش نظر كما تشيء مبيره ولكن بشيء مبيره إين رقوبه لأن هذا الذي أصيب بفقد الأولاد في الدنيا ينجبر في بالآخرة بالعوض عن ذلك بما یانالو من الله ان شخص الله عبادش رو بهش میدهد در آخرت با اون سببی که الله براش گذاشته. بله حدیث بعدی. قال المؤلف رحمه الله با اسنادی سابق. قال وقال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم سلم. ما تعودون فيكم السرعة. قال هو الذي لا تسرعه الرجال. فقال لا ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. حدیث سادوشمزا فالمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم السرعة ودروادي سرعة السرعة سرعة جنگ نبارد كشتية همين هوا يساب مشه ما تعدون فيكم السرعة در مصارعه كشتية دعوة شكاس نوف بزير كي يتون دعوة ما تعدون فيكم السرعة كسي كده شخصي ديار بزمين ميزانه شكاس بيده قال هو الذي لا تسرعه رجال. در کشتی شکست ناپذیر کسی که کسی کمرش رو به زمین نمیزنه این قوی ترینه این سریع ترینه سریع ترین و با, با ساد سریع این سرعت یعنی بصاد این شخص شکست ناپذیره بازم نگاه کنید حدیث سومم بازم با سوال استاد و شاگرد میدونی سرعت چیه نه اون سرعت بسیط سرعت با ماشین سرعت با صاد سرعت میلی چیه سرعت شکست ناپذیر شده اون شخص شکست ناپذیر گفتن صحابه کسی که در جنگ در دعوا در کشتی کسی رو به زمین نمیزنه معنای لغویش قال لا نه ولكن السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب شخص قوی که شکست ناپذیره شخصی که خودشو در خشم نگه دارن قوت میخواد قدرت میخواد و تمرین میخواد سخته والله عفت کردن گذشت کردن از انتقام سخته ره. من بدی یک از شما بکنم ماشینم ده بدره شیشه ماشینم میتونید خورد بکنید ماشینم میتونید منچهر بکنید همون کاری که شاگرده با استادشون تو مدرسه میکنن یهو بیرو میاد بیرون ببینید که شیشه ماشین شکونده ترین کار انتقامه ترین کار انتقامه. ولی گذشتی گذشت سخت، بر نفس سخت. انسان بر نفس خود چیره بشه، غلبه بکنه، گوزش بکنه سخت. رسول الله صلی الله علیه و میگه این شخص قوی که رسول الله صلی الله علیه و در حدیث میگن المؤمن القوی این قوته، این قدرت، این شکست ناپذیریه. المؤمن القوی خیر و المؤمن ضعیف یکی از مظاهر قوت چیه؟ نگه داشتن نفس به هنگام خشم. این قدرت میخواد، این توام میخواد، این اقتدار میخواد. این اقتدار رو هر کسی نداره. به خاطر همین یک از صفات های محمود که الله در قرآن یاد میکنه کسی که به هنگام خش خودش رو نگه داره چرا؟ چون تو نذاشتی که شیطان بر تو چیره بشه چون شیطان در ورود یک از درهای ورود به روح و روانت اینه شیطان یا من آدم مجرد در من میگه میگه یکی از راه های ورود خشمه که بر انسان چیره میشه یک حرف و یک سخنی میزنی ها دعوای خ این زن و مرد کنن ابل هم بابر بکنن هزار هم فشت و هم دیگر میدن ولی بعد با هم دیگه صلح میکنن بد آخر چی اون کسی که اومده وسط میان جگری کرده اون بد میشه شیطانه هدف این زن و مرد نبودن هدف اون خاله بود اون امه بود اون عمو بود اون دوست و رفیق بود که اینجا چی بشه فدا بشه فدا میشیم تو دوای خانوادگی از کجا شروع شد خش یکی از اون اشخاص خاص نتونست جلو و خشم خودش رو بگیره کل اون خانواده رو به هم ریخته، همه رو به جون هم دیگران داده. یک خشم یک دری که شیطان بر ما وارد شد، از یک نفر از ما. یک کلمه گفت، همون یک کلمه شد دعوا، جنگ، جدال. اینجا هست که رسول الله سر که صحابی میاد بهش، ازش مشورت میخواد میگه یا رسول الله اوصی نی، وسیه تمکن هم کن، نصیحت هم کن، نمیگه توحید، نمیگه نماز، نمیگه روز قللا تغذیه. قال اوصی نیا رسول لا تغضب قال اوصی نیا رسول قالا لا تغضب بس اینچی میرسونه اهمیت این سفارش اهمیت این مطلب کسان خشم خودش رو فرو ببره کار سختی اگر آسون بود که اینچی میرسات تأکید نمیکن علیه صلوات و سلام سخته دشواره بر نفس سخته که خودش رو به هنگام خشم نگه داره بر نفس خودش شیره بشه اونجا به اسم عزت نفس شیطان میاد وسوسهش میکنه به اسمی که از حق خودت دفاع بکنی بر چیتون بر تو چیره میشه چیزایی که شیطان تو رو وسوسه میکنه زیاده تو باید مواظب باشی نگی یک کلمه ای که بدتابانه شو پس ببری یک کلمه با یک کلمه خاطر همین از توصیح هایی که میشه که به هنگام خشمت سخن نگل حاج که در حدیث ضعیف اومده که اگر میتونی آبی بخور و اگر ایستادی بنشینی اگر نشستی دراز بکشی ضعف هست در این روایت ها ولی خوب خشم وقتی که تو خشگیم میشی به الله ببر، از خشم به الله ببر، از شیطان بگه عوض بالله منه شیطان رجیل پس خشمه انسان باید جلو خشم خودش بگیره خشم دری از درهای شیطانه و حالا فضیلتاش که در شعن اون کاظمین غیز اومده بعدا میخونیم اینجا وچه شاهد این حدیث در چیه؟ در چه بابی اوبرد؟ در بحث رقوب اوبرد درسته؟ من له و سخت چرا این حدیث رو اوبرد؟ چرا بحث حدیث این چه ربطی داره با سقت؟ حالا نوکنید حدیث رو کنار هم دیگه بذاریم شاید به یک جوایی برشد. الان بحث سخت جنینه شخصی جنینی ازش سخت شده. خب خشم انسان چه ربطی به سختش داره؟ شاید مثلا یک کسی بگه خب آدم شاید در خشم زنش و کتک بزنه بچه سخت باشه ولی خب این مقصد نیست یا مثلا شخصی بگه که صبری که انسان شاید داشته باشه در مقابل اون سخت جنین الان این شاید یک وجهی داشته باشه چون الان یک انفعالی هست خشم یک حالت نفسیه هر کسی از ما پیش میاد وقتی که مثلا به فرد تو ماشین داره میکنه می‌کنه از عقب میاد یکی با بی‌توجهی حواسش نیست تلفن داره نگاه میکنه میزن از پشت ماشینت اینجا یک انفعالی از تو پیش میاد عکس العمل پیش میاد اون عکس العمل چیه خشم اون عکس العمل خشم چون می‌دونی مقصر کیه چون می‌دونی مقصر کیه همسرت سخت میکنه دو حالت داره یکم مقدر الهی بوده نه مقصر خودتی نه زنت الله مقدر کرده که بچه‌سف بشه یا کسی اومده دو تا حوو بودن همدیگه رو کتک زد که این جنینه شده این انفال از مرد پیش میاد ملحق میشه به اون حالت اولی یک کسی ام سبب شده اینجا پیش میاد این یک وجه وجه دیگر که رب داره با بحث سخت. بحث اون قضیه صبره که اشاره کردم زنی بچش فوت میشه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میگه زن ناراحت میشه میگه تو داغدینه نیستی که بفهمی که من چی دارم میگم بعد از اون هوش حواسش که جمع میشه و به قول خودمون دلش حاضر میشه متوجه میشه که اون رسول الله بود ر صلی الله علیه و سلم تسلیتش داده و اینا چی بهش میگه انما الصبر عند صدمه اولا اونجا باید صبر داشته باشید در حین که تو حین انفعالته یعنی اونجایی که جوش میزنی اونجایی که دلتنگی اون وقتی که تو خودت نگهداری این معنای صبره وقتی که صدمه بهت وارد میشه صبر خشمم صبر میخواد خشمم چی میخواد صبر میخواد جنین هت سخت شده تو با صبور باشی. الله اینجوری بر تو تقدیر کرده در اینجا باید تو صبور باشی اینجا باید تو خشم تو دلتانگی تو نگه داری حق با تو تو حق داری ولی که چی خوتو نگاه دار رو خشم خوتو فرو ببر. حالا ربطش فهمیدی؟ ربط ها زیاد بودن ولی خب ولی بله. ما به بعدی هفتاد و یکمین باب از باب صحیح ادم افراد باب حسن الملکه ملکه مملوکین انسانه اون کسانی که در ملک انسان هستن از ممالیک از برده از خادمین خدمتگزاران باب حسن الملکه کسی که رفتار نیکی داره با مملوکینی خودش با و کسانی که تحت اختیارشه زیر دستانشن مقصود اینه که شخص نیک باشه در سرپرستیش و, و در برخوردش با زیردستانش. حسن الملکه. کسی که رفتار نیکی داره با زیردستان خودش. کسانی که زیردستشن از خدمتگزاران و بردگان. حدیث شماره 111. حدیث ابن مسعود رضی الله عنه که میگه در رسول الله صلی الله علیه فرمودن. عجیب و دعید. یک مطلب. ولا ترد الهديه مطلب ديجر ولا تضرب المسلمين مطلب السقوم كبچه شاهد این بابه عجیب الدعاء کسی دعواته توم اجابات اجابت بکنید عجیب اجابت کردنه بخاطر همين شيخ الحلبانی میگه میگه استجابته دعوت اگر کسی دعوتتون کرد واجب نبوی ابن عبد البر در وليمه اگر دعوت شدی منکری اجابت دعوت را واجب میدونن میگن به اجماع واجبه و اجماع ناخن میکنن روش یعنی اگر ولیمه بود عروسی بود شخصی عروسی کرده دعوت تو کرد به عروسیش مادامی که منکری توش نیست مادامی که منکری توش نیست از مولودی گرفته از موسیقی گرفته از هر نوع منکری از اختلاط زن و مرد چون رفتن به این, این مجالس یعنی تعید یعنی تقریر حرامه رفتن به این حرامه اجابت باید بکنیم خاطر همین ولی نقل میکنه با همین ابن عبدالبر میگه که میگه وجوب حضور و اجابت دعوت مگر استثنا داره مگر اینکه منکری در اون دعوت باشه بعضی از علمان گفتن که تعمیمش دادن این حدیث عجیب بود در هر کسی دعوته کرد دعوتشو رو استجابت بکنید میگن که این جا نمیومد ولیمه و غیر ولیمه شما ولیمه از کجا آوردید هر کسی دعوتتون کرد نباید روشو زمین بزنید عزیزی بودید پیشش اون دعوتت کرده تو باید جواب بکنی جواب نکردی یعنی تأخیرش کردی و تحقیر کردن حرامه یعنی تو ناچیزش شمردی در دل خودت کمش شمردی این دلدادت بر کبد میده غرور میده پس هر دعوتی اگر ما شدیم باید استجابت بکنیم این چیزی هست که شیخ برداشت میکنه و میگه که عموم داره خصوص نداره که ما خاص عروسیش بکنیم حالا ترجیح کدوم یکی گفتیم مادامی که منکر نیست اتفاق در وجوب حضورش اون که خلاستمون شد اون حرام شد رفتن حالا میمونه در عروسی یا غیر عروسی که درش منکری نیست حکم حضور در عروسی البانی با اتفاق با اجماعه اون قبول داری میگه ولیمه حالا میمونه در غیر ولیمه ولیمه عروسی در اونجا چی؟ اونجا هم واجبی یا نه اختلافه البانی میگه واجبه هدیه را رد نکنید هدیه رو رد نکنید هدیه رو رد نکنید چون اگر رد بکنید دل ترف شاد بشکنه شاد فکر میکنید دارید تحقیرش میکنید الا بعضی از حالات هست انسان در حرج میفته من خودم هم در حرج افتادم یعنی به طرفم گفتم یعنی روبرو گفتم در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلام می من, من شفع شفاعه لاحد فاهدا له هدیه علیها کسی شفاعتی کرده جایی دعبایی سلحی داد بعد هدیه بهش دادن فقبیلها قبول کرد فقد اتبابا عظیما من ابواب ربا در ربا افتاده ونم نه اون فکر چیزی کوچیکی بوده چیزی بزرگیه جایی انسان شفاعت میکنه بهش هدیه میدن یا عاملیه یه جایی کار کسی راه مندازه بهش هدیه میدن این هدیه چیه سحته حرام. لا ترد الهديه هديه رو رد نکنید مادامی که اون هدیه وجه شرعی داشته باشه نه اینکه مطلقاً یک سری هدایا هستن پس حرامه کنسان بپذیره جوی شفاعت کسی کرده نه باید بپذیره عاملی نه با اون عملت هدیه بپذیری مثلا اون صحابی اومد رسول الله و امیرش کرده بود در سر لشکری هدیه بهش دادن و رسول الله نراحت میشه بعد میگه یا رسول الله بخرم من سر لشکر بودم دادم به هم دیگه زحمت کشیدم قال هل جلست في بيتك همین چسی بده تو خونت میومد بهت ما این رو بهت نمیدادیم بهت میدادن کسی هدیه بهت میداد تو تو خونت مینشستی کسی هدیه بهت میداد هیچکس بهت نمیداد چون ما این پوسته بهت دادیم بهت هدیه دادن این پوسته رو ما بهت دادیم پس چون این پست ما بهت دادیم نباید در مقابلش تو هدیه بپذیری قال لا تغرموا المسلمين این گفتی بچه شاهده بر حسن رعیت و سفرسی بازیر دستان ولا تضربوا المسلمين مسالم ولا نزاع او يا شما برداشت میکنید ولا تضربوا المسلمين مفهوم مخالفش یعنی غیر مسلمین اگر برده مسلمان نبود کو تکش بزنید اجازه دارید بزنید نه نه مثلا ترمذی الله جل شانه ولا تقل لهما اف تنها تنهرهما بعضی از ظاهری گفتن مثلا سوال مطرح ما همیشه یکی سوال میپرسه میگه حکم کو تک زدن پدر مادر چیه مشکلی نیست چرا تو خدا گفته اف نگید نه گفته کو تک الله وقت گفت اوف نگی یعنی از باب اولا این رو گفت از باب اولا برادرینش چون قیاس قبول نداره اون طرف ظاهری قیاس قبول نداره چون قیاس قبول نداره میان چی کوتک زدن درسته الله گفت فقط اوف نگی اینجا چون رسول الله توصیه میکنه مسلمان نذری نمیتونه کسی برداشت بکنه غیر مسلمان پس زدن جایزه تو برداشت بکنید بلکه اینجا توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر حسنه معاملة وتعامل. خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس رضي الله عنه بياته. ما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا إمرأة ولا خادم نزني نبت شيء ونخدمت بزرير رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتش بخدسل وكسب لنكاد مغار إلا أن يجاهد في سبيل الله ترجع أنك وشي. وما نيل منه شيء قط فينتقه من صاحبه كسب نبودك بيش ظلمي بكون نبيات انتقام بكيره إلا أن ينتهك شيئ من محارم الله إلا أنك شخص مرتقب حرام شده بشيك أصبحت حد روش إجراء بشيك فيانتقم لله عز وجل جل انتقام الله بود يعني إجراء حد حدود بوده مثلا آخرين حديث قال مؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أكبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أمي موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم حديثة مرحباً كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم آخرين سخنان الرسول صلى الله عليه وسلم دار دنیا الصلاة الصلاة قبل نماز الصلاة يعني الزم الصلاة أقيم الصلاة موذبت داشت بشيد بر نماز مدومت داشت بشيد حق و النماز رأدو بکنید و الله كالله حزتون خاصه صلو كما رأيتموني و صلی چه نماز در وقتش چه حسن النماز؟ با اقتدای به رشت الله صلی الله علیه وسلم در ادای درست اون نماز نماز را چنان بخوانی که رشت الله صلی اللہ علیه وسلم میخوندن حسن اون نماز مداومت بر زیبا خوندن نماز در وقتی که الله مکلف کرده از صلاح توصیه به نمازه هم استبرار و مداومت با پایبندی به اون نماز و هم پایبندی به درست خوندن و درست ادا کردن اون نماز اتقو الله فی مملکت ایمانو کم بعد از نماز توصیه به تقوای الله در خدمتگزاران و در برده هایی که زیر و کنیزانی که زیر دستمونن توصیه به زیر دستانه توصیه به زیر دستانه ما هست تقوای الله رو باید داشته باشید اینا همه لوازم تقوی هست حالا چه نماز چه رفتارمون با همسرانمون بخاطر همین همیشه در خطبه‌هاش چه خطبه ازدواج بود چه خطبه جمعه بود رسول الله صلی الله علیه و معمولاً آیاتی که توصیه به تقوا هست را می‌خونه یا یا ای الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وأنتم مسلمون توصیه به هس. تقوا هست تقوا اینی که تو نماز را در وقتش درست ادا بکنید اینکه به کسی ظلم نکنین اینا توصیه الهیه و این هست که انسان همیشه باید حقش رو ادا بكنیم حقوقی که باید حقش رو ادا بکنه وقتی که میگیم حقوق خصوص نماز که بالاترین حق الله به گردن ما بزرگترین حقی که الله از ما خواسته تنها مسئله ای هست که درش اختلاف در اون واجبات که اگر کسی این واجب را ترک بکنه کافر میشی یا نمیشی فقط نمازه امام احمد میگه اگر کسی این واجب را ترک بکنه کافره جمهون میگن کفرش اصغر کفرش اکبر نیست تا این حاتن این مسئله نماز بزرگ این قد شنیع ترکش اب کافیه که الله در قرآن میگه عن المجرمین مسالککم فی سقر این روز قیامت سال میشه از تبهکاران از ستمکاران از ظالمین از ظالمین روز قیامت کسانی که تارک نمازن لکه فی سقر قالو لم نک من المصلین قالو نمازگذار نبودیم نماز خون نبودیم قالو لم نک من المصلین نبودیم نماز نمیخوندیم تقوای الله رو نه در نماز تقوای الله رو نه در حسن نماز خوندن درست نماز خوندن نه در وقتش خوندن همیت نمیداده به نماز نمازشش فوت شده نماز واجب ازش فوت شده نمی نمیداده ما سلکتکم فی سقر سقر کجاست سقر جهنمه پس سرنجایی که الله آفریده اونم جهنم قعر جهنم با اون آتشش با اون آتش سوزانش ما سلکتکم فی سقر چی میگن پوسخ جهنمیان اهل نماز نبودیم از نمازگزاران نبودیم وسط نمازگزاران نبود نماز جماعت ازش فوت می‌شد اهمیت به نمازش نمیداد این چیزها باید انسان درش تقوا داشته باشه چه حقوق الله که در این حدیث اشاره شده که رسول هم مش داشت در مرض وفاتش آخرین سخنانش این بود چه در بحث حقوق الله و چه در بحث حقوق آدمیان انسان هایی که دور بر اطراف من خصوصا خدمتگزاران که کمتری نشه انساش شاید ناچیز بهش موره وقتی که تو یک چیز کمی برات یاد میشه که در اون تقوا داشته باشی وقتی که بنت میگه اون کنیزت اون خدمتگزارش تو در اون تقوا داشته باش که محاسبه میشه روز قیامت از باب اولا تقوایات در پدر و مادرات در برادرت تقوایات در ارحامت از باب اول اونهاست اونها که حسابش سختره سنگینتره وقتی که این چیز ناچیز تو در مقابلش حساب الكتاب مشي أسباب باب اولى ديگر چيزا سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك صلى الله على محمد وعلى محمد